دسیه دوازده بسم الله رب که قیاسا مفهول مطلق آملش هستش. مواردی که دا مورد اول رو خوندیم، قشوت در رسال، فهم ما منن بعد و به ما بده. توضیح دادیم. تقدیراتش. هم. مورد دوم لهو علیه الف همین اعترافن لهو علیه الف همین اعترافن لهو خبر مقدم متعلق به عامل مقدر خبر مقدم علیه جار و مجرور متعلق به اون چیزی که لهو بهش متعلق الفوده همه مبتده معاخر مزاف مضاف. لام برا نخط لام برای نخط و علا برای زرر این رو دو جدا و یعنی به نفع او بر زرر من یعنی به نفع او بر گرده من چی؟ هزار درهم یعنی هزار درهم من به او به درگار به نفع او بر گرده من یه اطراف که معلومه یعنی انسان به یک مطلبی اقرار. و بپذیرون اعترافن یعنی در این مطلب من اعتراف. این اعترافن مفهول و مطلقی اعترفوی مقدر که اون اعترفو واجب هست بود اون اعترفو واجب هست بود و این اعترافن مفهول و مطلقی که جای او نشست این مورد رو چی بهش میگن؟ این مورد رو میگن جایی که مفعولون مطلق محکد است لنفسه محکدون لنفسه یعنی جایی که مفعولون مطلق محکده لنفسه میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه واقع بشه مفعولون مطلق بعد از یک جمله که اینجا بعد از جمله لحو علیه الف دره. جمله‌ای که معنای اون جمله این مفهولون مطلبه و احتمالی غیر از مفهولون مطلب در داده بعد از یک جمله بیاد که معنای اون جمله این مفهولون سریع در اون مفهولون مطلبه. چطور؟ وقتی یه نفر برمیگرده میگه که به نفع زید علیه برگرده من هزار درهم است خود این جمله یعنی چی؟ به اعتراف گردن دیگه اقرارول اغلا علا انفسهم جایزن و حجه اگر یه آقه نیومد بر ضرر خودش اقرار کرد اقرارش درسته اقرار که من سد تو هم به فلانی بده کارم همین بسه باعث بده کاریش میشه و قاضی حکم میکنه که تو بده کاری تو بوده. ولی اگر ادعا کرد که طلبکارم کارم باید بره چیه؟ دلیل بیاره بیانه بیاره اقرار کفایت این ایلهو علیه الفدر همین جملهش به جز اعترف و معنای دیگری نداره یعنی این جمله رو بذاری توی کفه ترازو اعترافو اعتراف میکنم رو هم بذارید توی کفیت درازو میزونه میزونه هیچ فرقی با هم اون یه بحثیت اصلا خارج است ما گفتیم که آدم عاقل اگر اقرار کرد اقرارش بر علیه اون آفز است حالا قانونش اقرار رو غلا علا انفوسیم جایز و ناچه پس بنابراین جمله ما سریعه در معنای اعترافه و هیچ برقی با هم نداره پس مؤکد لنفسه که بهش میگن یعنی واقعه بشه مفعول مطلق بعد از یک جمعه ای که اون جمله معنای غیر از مفعول مطلق نداره پس مفعول مطلق در واقع اینجا داره تاکید چی رو میکنه تاکید خودشو میکنه چون جلهو علی الیاه الرحیم یعنی اعتراف و اعترافن داره در واقع تاکید خودشون یه میشه که هم محکدان نه مشخص شو و این جمله نسته در اعترافه و اعترافان داره تحکیدون اصلا تو واقعا همین جمله جای عاملش نشسته همین جمله لقو علیه الفو در همه که غیر از اعتراف معنای دیگه نداره جای عاملش نشسته مشخصه و دیگه عاملش شده واجبون و چون این جای عاملش نشسته و ضعیفه این مفهول و مطلق و این عامل ضعیف مقدم هم نمیشه با اون که مطلق میتونه مقدم بر فعلش بشه ولی اینجا چون خود فعلش نیست و یه جانشینشه و اون جانشین ضعیفه این اعتراف مقدم با این مفهول و مطلق نمیشه مشخص شد هر کجا که همچین شکلی باشه یعنی مفعول مطلق بیاد که تأکید کننده مضمون جمله قبل خودش باشه فعل مفعول مطلق قابله حذف است وجوباً له علی یعن فدر همین اعترافاً بگیم اعترافاً و مطلق یه و مقدره که این اعتراف واجب الحذف چرا چون جمله له علی یعن همین جای او رو چرا این جمعه تونسته جاشو پر کنه؟ چون این جمله احتمالی غیر از اعتراف نداشته لذا به این مفهولو مطلق میگن محکد و لنفسه تحکید کننده خودشه یعنی جمله قبل این خودشه و این تحکید کننده مطلب بعدی میگه زیدون مورد ثبت زیدون قائمان حقاً حالا ما به جای این که بگیم زیدون قائمون حقا بگیم زیدون ابنی حقا قائمون رو ابنی میذاریم که معنا رو توضیح بدیم بعد با قائمون هم شما میدونید اینو میگن معکدون لغیره اینو میگن مفعولون مطلق معکدون لغیره مشخصه و جاییه که مسر ما مفعول مطلق ما بعد از یک جمله بیاد و اون جمله غیر از مفعول مطلق ما احتمال احتمال دیگری هم داشته باشه احتمال دیگری هم چیه داشت الان من میگم زیدون ابنی زیدون ابنی یعنی چی؟ یعنی زید پسر من خب یا زیدون عبی زید پدر من ها؟ پسر پدر اطلاق حقیقیش چیه؟ اینکه واقعا پدر و پسر من پدر و پسر حقیقی زیدون ابنی یعنی زید پیش من پسر من از سول به من اگر این معنا باشه حقا داره چکارش میکنه تحکیدش میکنه اما گای اوقات ما زیدان ابنی میگیم و منظورمون از ابنی یعنی چی؟ یعنی زید شامیر داره اگر این معنا باشه دیگه حقا تاکید بگید نمیکنه. جمله قبل غیر از حقا میشه چون جمله قب دو احتمال دارن چون جمله قب دو احتمال داره. آره اگه عبی باشه که زیدون عبی میتونیم سه احتمال براش بتراشیم چون پدر به سه لفظ اطلاق میشه آبا اوکه سلاسون پدر تو سه تاست سه تا پدر یکی عبون ولده که یکی پدری که تو رو به دنیا آمود پدر حقیقی دوتا پدر مجازی ابون ولده کرد ابون علمه کرد. و دیگری پدری که به تو چیزی یاد داده معلمت بوده و ابون زدوجک و اون پدری که به تو زن داده یعنی پدر زند. اون هم پدر مجمزیست خب حالا اگر من گفتم زیدون عبی این سه تا احتمال درش داده میشه حقا رو که میارم یکی از این سه تا رو که ابه حقیقی باشه کارش میکنه تاکیت اون دو تا احتمال رو بیرون میکنه لذا به این میگن مفعولون مطلق معکد غیر خودشه چون اون جمله دقیقا مساویه با حقا نیست مثل لحوالای الف و درهمن نیست که لحوالای الف و درهمن توی یک کفه ترازو اعتراف رو یک کفه ترازو میشید مساوی ولی الان اگه زیدون عبی رو بذاریم توی یک کفه ترازو و اون طرفش حقا رو بذاریم یکی استاد لذا احتمال غیرش داره میشه مشخص این همین زیدون قائمونه زیدون قائمون یعنی زید استاده حالا اگه واقعا زید در خارج استاده باشه میشه هم حقونیه که خارج با این حرفی که ما میزنیم یکی یعنی واقعا در بیرون زید وایستده و مطابقه با این کلام هم باسته. میشه هم ممکنه که من زیدون قایمون بگم و این دروغ باشه زید... ممکنه که من زیدون قایمون بگم و این دروغ باشه زید اصلا در خارج قیام نکره. مثل لهو علی یعرف و همه نیست لهو علی یعرف همین یک معنا بیشتر نداره اون هم چیه اعترافه دیگه غیر اعتراف معنای دیگه ولی زیدون قایمون ممکنه زید در خارج وای باشه این کلام زیدون قایمون میشه چی؟ هم ممکنه زید در خارج وای نه باشه میشه دروغ میشه که دیگه حق از احتمال دو طرفه داشت حقا اومد این احتمال این رو چکای کرد؟ یک دوبامش رو تحکید کرد دو محنا داشت؟ یک دوبامش رو چکای کرد؟ لذا محکدون لغیره می این یعنی غیره خودش رو داره تحکیدون کن لذا این حقا مفعول مطلقیه که فعلش چی شده؟ واجبال حضب یعنی زیدون قائمون احقه هبن احقه هبن اون احقه هبن چی شده؟ هست این هم مورد سفا مورد چهارم. ما انت الا سیرن ما انت الا جایی که مبتدای ما اسم ذات است مبتدای ما اسم ذات است مشخص و مفعول مطلق محصور فیه به لاست مفعول مطلق بعد از الاست محصوره به الاست و امکان ندارد که مفعول مطلق مرفوع شده و خبر آن مبتدا گردد و خبر آن مبتدا یعنی اسم ذات گردد زیرا زیرا اگر مبتدا اسم ذات بود آه مبتدا اسم ذات بود مصدر که اسم معناست است که اسم معنا است خبر او نمی نمیشه خبر او واقع نمیشه چون غلطه بگیم مثلا انت سیر انت سیرون یعنی چی یعنی تو رفتنی و رفتن که نیست رفتن اسم معنوس، انته اسم لذا بناچار در اینجا مفعول و را نایب از یک جمله می دانیم که عامل در او بوده است و حذف و حذف شده ماننده ما انت الا سیران، ما انت الا سیر ما مای نافیه ما مشبع که کلیست عمل نمیکنه چون نفیش چی شده شکستش میگه انت مبتدا الا استثناء استثناء مفرره سيران مفعول مطلق جانشین یک که جانشین یک تاثیر موقته که جانشین یک تاثیر موقته اصلش بوده ما انت الا تاثیر و اون تاثیر چیه جمله خبره انتست. و اون تاثیر جمله خبره معنیش چیه یعنی نیستی تو مگر سیر می کنی، مسافرت میکن یعنی تو چی نیستیم اگر اینکه مسافرت می کنی از این فقط مسافرت کردن <تصفيق> نتیجه می گیریم. اگر یک جا اگر یک جا اسم معنا مبتدا بود، اسم معنا مبتدا بود. یعنی در واقع، امکان این که به مفهول و مطلق رفع دهیم یعنی در واقع امکان این که به مفهول مطلق رفع بدیم و بشه خبر وجود داشت مستر را مرفو خانده و خبر قرار می دهیم مستر را مرفو و خبر مثله؟ ما عملو که ما عملو که الا سیرون ما عملو که الا سیرون یعنی چی؟ یعنی نیست عملتو کارتو مگر سیر کردن بودید معنا دارست چون عمل میتونه سیر کردن باشه اما زید نمیتونه سیر کردن باشه انتر از چی شد؟ مورد سوم جایی که مفعول و مطلق بعد از الاست و ما قبلش اسم زاد امکانه که اون مفعول و مطلق مرفوع و خبر بشه نیست غذا باید نسب داد و بشه چی؟ مفعول و مطلق جانشین یک جمله و اون جمله خبر باشه این هم مورد ثبوت مورد چهارم میشه نه؟ چهارم. مورد پنجم و این نما انتا عینا ما انت این مانند قبل است عینا شرائط و حجمش مانند قبله اسم ذات مفهول مطلق خبر فقط حسر حسر عداتش در جمله قبل ادات حصر چی بود نفی و استثناء ما و الا ادات حصر در جمله قبل چی بود نفی و استثناء در این جمله عدات حصر چیه ان فقط همین فرق بوده و الا از نظر معنا ما انت ال سیرانو بزاری تو یک کافه ترازو ان نما انت سیرانم بزاری تو یک ترازو دوتاش یکیه چرا؟ چون انما نما عدات حسره ما و الله هم عدات حسره اون معناشی بود نیستی تو مگر مسافرت کننده مسافرت میکنی معنا این چیه؟ یعنی همانا تو مسافرت میکنی فقط تو مسافرت میکنی یعنی کار دیگری دوتاش معناشی و در اینجا هم امکان نداره که سیلم بشه چی خبر از برای انتا نمیتونیم بخونیم این نما انتا سیرون قلط است لذا بعد بگیم بوده این نما انتا تسیرون حالا اگه به جای انتا بود عملک این نما املوک چی میخوندیم سیرون قبر, قبر میدونم مورد بعدی هم عین همین مورد از نظر شرائط و مسائل این همینه فقط حصر وجود ندارد عدات حصر وجود ندارد و مفعول مطلق تکرار شده یعنی اگر جایی مفعول مطلق چه شد تکرار شد مفعول مطلق تکرار شد و مصندان لعب مبتدا هم و مبتدا هم اسم زاد بود در اینجا نیز مفعول مطلق به جایه بگید فعلش میاد مشخصه و تقدیر عبارت زیدون و سیرن سیرن اینه تقدیر عبارت زید و سیرن, سیرن اینه زیدون تسیرو سیرن زیدون تسیرو یعنی یکی از آن سیرنها ها یعنی یکی از آن سیرن ها یکی از اون دو تا جای فعلش رو کرده جای فعلشو شد, شد. ها پس چی شد جایی که مبتدا باز اسم ذات است و مستر آورده شده و این مستر امکان رفت دادنش به عنوان خبر بگید نیست چون حمل اسم معنا میشه به ذات غلطه لذا مستر چون تکرار شده یکی از اون مستر ها جای فیر میشینه و امکان این که فیر رو کنیم نیست بیشه این نما اون این نما که هیچ زیدون سیرن سیرن یعنی زیدون یسیرو سیرن زیدون یسیرو سیرن به جای یسیرو چی اومده اون سیرنه و جایی ازیرو رو پر کرده و عامل شده واجبا مسته. مورد آخر از جاهایی که عامل مفعولون مطلق واجبا هست مثال مرر تو بهی یعنی مرر تو به زیدن مثالشو زده مرر تو به زیدن فعظا لهو سوتون ف از اون نحو صوتو صوته مارن یه صوته شاید مثاله یعنی یا صوت و صوته یعنی یا صوت و صوته اماره که مفعول مطلق بعد از یک جمله بیاد الان صوته مارن بعد از چه جمله اومده لهو صوت لهو خبر مقدم سوتون چیه مبتده مرر تو فعل و فاعل بهی به جار و مجبور متعلق به مرر تو فعزا میگن ازای فجاییه یه ناگهان حرفه لهو سوتون لهو خبر مقدم سوتون مبتده سوت امارات مفهوم مطلق برای یک فعله واجبون هست. بیای سوت و سوت اون یاسوت رو جاشو لحوز سوتون پر کرده. حالا چطور پر کرده؟ شرایطی که بگم میفته. جاشو لحوز سوتون چکار کرده؟ پر کرده. پس جایی که مفهوم مطلق بعد از یک جمله بیاد، اون جمله مشتمل باشد اون جمله در بر داشته باشه. معنای مفعول مطلق رو معنای اون مستر رو و فاعل اون مفعول اون مطلق رو. یعنی الان لهو هو به کی بر میگرده؟ به اون کسی که صدای خر در می آورد صوت صوت هم که مصدره ببینید صوت الان مثل همون صوته مثل صوت ما یعنی جمله لحو صوتون یک حدث درش هست صوتون و یه هو درش هست که میخوره به اون شخصی که این صدا رو در میاره حالا یسوتو رو شما عامل دیگه یسوتو یسوتو چی دارد؟ یه سوتو فعله بندازید تو آزمایش چی در میاد یه فاعل در میاد که درش مستطره و یه دونه معنای مستری دیگه این جمله لحو سوتون همون فاعل رو و همون معنای مستری یعنی اگر به جای مثلا لحو سوتون بودش که لهو مثلا به جای سوت یه کلمه دیگه لحو بکا نمیشود چرا چون لفظ اون مستر در این جمله نبود اگر به جای لهو مثلا بود لی سوتون چون فایل ها فرق میکرد بگید نمیشه پس این باید یا مثلا بود هازا سوتون اسم اشاره بود نمیشه باید جمله قبل دارای فایل و لفظ اون مستر هر دوتا چیه؟ دارای فائل و لفظون مستر هر دوتا و مراد از مفعول مطلق مطلقم مفعول مطلق تشبیهی باشه یعنی مفعول مطلق نوعی مثل صوت همارم صوت مفعول مطلق چیه؟ نوعیه دیگه مثل زربل امیر در یک چنین جایی آمد مفعول مطلق هست میشه عامل مفعول و مطلق هزف میشه و این مستر این جمله قبل جاشو بگید مم. یعنی بوده یسوت و سوتا هماره یسوتا هز شده چرا چون لخو سوتون هم فایلشو داره هم رو اینن خود فیله این جاشو چکای کرده پس چی گفتیم جایی که مفعول و مطلق دلالت بر تشبیه کنه یعنی مفعول مطلق نوعی باشه سوتا هماره هست و ما قبلش هم بگید یه جمله باشه و اون جمله هم دو تا شرط داشته باشه اولا فاعل مفعول و مطلق رو در بر داشته باشه لهو برو داره و ثانیاً لفظ خود مفعول و مطلق هم درش چی شده باشه تکرار شده باشه که صدون چیه تکرار شده پس بنابراین این در یک چنین جایی هست میشه عامل مفعول و مطلق وجوباً و این مسترجاشو فعظا لحو سوتون سوتا هماره مرر بهی یعنی مرر به زیده مرور کردن به زید پس ناگه برای اون زید صدایی بود مثل صدای نا. اگر یه سوتا رو بیاری فایلش کیه زمیریه که به زید برمیده هو فایل هو کی به کی برمیگرده به پس بنابراین این ها چیه؟ یکیز خود عین مستر هم تکرار شده یا نشده اون صوت اینا پس بنابراین این شرایط رو داشت. حالا اگه بود مرد تو بهی فعضا صوتون نمیشد چرا چون دیگه فایل تکرار نشده. و اگه بجای صوت مثلا بودش که ندا جو مررت تو بگی فضا له ندا اون صوت هماره غلط بود بعد فایل بعد فعلش چی میشد ذکر میشد بعد این دو تا شرط در کلام آخرین مورد آخرین مورد در لفظ هایی است که مثل لبیک لب سعدیک هنانیک و غیره حالا لبیک و سعدیکش ما بودیم لبیک میگن در اصل بوده علب بو فعلش واجب و رصفه تقدیر ما میکنیم اینطوری بوده علب بو نکه البابین علب بو لکه البابین اولبو یعنی اجیبو اولبو یعنی چی؟ اجیبو یعنی اجابت میکنن لکه یعنی چی؟ تورا اجابت میکنم برای تو رو چی؟ البابین یعنی اجابته این اصلش اینطوری بوده اولبو فیل زمیر هنف آهلش لکه جاره مجروع متعلقه به اولبو البابه این مفعولون مطلق عددی دو دوتا تصنیه تصنیه گای اوقات دلالت بر تکثیر میکنه تصنیه گای اوقات دلالت بر تکثیر میکنه این یکی از موارد یعنی گاه یوقات میگن اولب ولی منظورشون دوباره اجابت کردن نیست <تصفح> یعنی اجابت بعد از اجابت میشه دوتا اجابت بعد از اجابت میشه چی؟ دوتا میشه چی؟ کسیر پس عرب گاه یوقات از تصمیه اراده چی میکنه؟ تکسیر اینجا از مواردشه یعنی اول بولکه البابن یعنی نه اینکه دو مرتبه تا اجابت میکنم بیش از دو مرتبه نیست یعنی هر زمان که اجابت کنم دو ذهنم هست که اجابت بعد رو هم بکنم پشت سر هم تکسیر پس لب بیک یعنی چی؟ یعنی اجابت مداوم یعنی وقتی شما به خدا لب میگی یعنی چی؟ یعنی خدا ما مدام گوش به حرف تویی مدام اجابت میکنیم دو. خب بچه شده اولبا حضف شده الب پلاک ایل با شده، آزمش شد. که مستر بوده، مافوق و مطلق بوده، اومده جای الب نشسته خب فعلش شده واجب هست. مستر اومده جوش. شده, شده ایل با بین نه، ایل با بین شد تا اینجا نه، ها خب. بعد ایل با که مستر مزیدون فیهه مستر مرخمش کردن البابین که چیه؟ مستر مزیدون یعنی باب افعاله مستر مرخمش کردن مستر مرخم یعنی زواعدش رو حذف کنن مستر مرخم آن است که زواعدش چی شده؟ حضف شده برگردش شده به سلاسی می حالا البابین رو مرخماتش رو حضف کنی چی میشه؟ میشه لبه این یا میشه میشه مثل, مثل امدادن. امدادن رو شما بخواید مستر رو مرخم کنید میشه چی؟ مده این برمیگردید و سلس مجد پس شد لبن لکه لبن. لبن. لبن. لبن. بعد لباین رو اضافه کنید به لکه لببین اگه اضافه بشه به لکن نون که به انگام اضافه میفته و حرف لام هم که بین مضافه مضافه نید در تقدیر میشه غلام زیدن غلام و زیدن معنی شنی چی؟ یعنی غلام لزیدن دیگه یعنی غلامی که ما لزیدن لبین هم اگر اضافه میشه به لکه اون لامش چی میشه؟ اینجا اضافه به تقدیر لام لذا اضافه کردیم شد چی؟ لبین لبین حالا این همین سعدیک سعدیک هم بوده اصعه دو که اصعه دو که اصعه دو که بعد شده چی؟ اصعاده این بعد اصعاده شده چی؟ سعده بعد سعده رو اضافه کردید به کاف شده چی؟ سعده این پس بنابراین مفعول مطلب هایی که تصنیه هستند و دلالت بر تکثیر می یک چنین مفعولون مطلقه هایی آمرشون بگیر واجبون از نمونش لبک و سعده این هم مورد از مواردی که شما سعده ای کم همون منای لبک اجابه سوم، از منصوبات مفعولون لحی این ها باید یاد بید. واوردش رو با مثال باید تو ذهنتون بسپيرو اصل صیحت مفعول له مفعول له رو گفتیم اصولی داریم و تحسیلی داریم و مصدریش که میاد بیان علت ترمین المفعول له و اول منصوب به فعل مفعول له عبارت است از منصوب به یک فعل فعلی که فعله لتحصیل هی او حسوله. فعلی که انجام داده شده برای تحصیل این مفعول مطلق مثل زربت و زیدن تعدیدن یا برای حصول این مفعول مطلق مثل قعد تو الحربه جبنی یعنی یا اینکه فعل ما صورت میگیره تا مفعول مطلقه به دست بیاریم میشه در بیاری. یا اینکه مفعولون مطلق هست و باعث فعل ما میشه میشه چی؟ حصولی یعنی حصول دارد ما تحصیلش وجود دارد پس منصوبی که فعل به خاطر تحصیل او یا به خاطر حصول او صورت میگیره یک چنین چیزی رو بهش میگن مفعولو تو توهو تعدیبن مثال اول تحصیلی قد تو انهل حربه جبنن مثال دوم چی؟ حسول شرط مفهول و مطلق چیه؟ این شرایط رو باید خوب تو ذهن بسپرید شرط مفهول و مطلق ستاستید <تصفيق> یشتر اتا کنه او مسترم اولین شرط مفهول مطلق اینه که باید مستر باشه غیر مستر مفهول مطلق نمیشه دیگه زیدو نگید مفهول چی؟ مفهول ده زیدو دیگه مفهول الله گفته پس اولین شرط مفهول الله چیه؟ مستر باشه. حالا تعدیباً مستر بود یا نه؟ بله جبنن مستر بود یا نه؟ بله اولین شرط بودنش مستر دومیش متحدن به آملهی وقتن و فائلن زمان مستر و فائل مستر با فعل قبل یکی باشه نه اینکه یکی باشه که یعنی هم با هم به دنیا اومدن با هم از دنیا می یعنی یه زمانی باشه که این فعل و این فائل با اون مستر و فعل و فیلش با هم جمع شده ها نگاه کنید ذرب تو فیلش کهیه تو تعدیب فایلش کیه ادب کننده کیه همون توئه دیگه ها یعنی فاعلش پاس کیه خودتو یعنی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اونی که میزنه همونم میخواد ادب کنه لذا پس برابری فاعل مصدر با فاعل زرب میشه چی یک زمانشون هم باید یکی باشه زمانشون هم باید چی باشه یکی باشه یعنی چی یعنی همون زمانی که میزند همون زمانیه که داره کار میکنه عدب میکنه و اگر فرق کند مشخصه زمان یکی فائل هم یکی دوتا شرق اتحاد زمان اتحاد فاهم بین عامل و مفهول و مطلع. یکی هم مستر باشد شد حالا مثلا یه مثال من بزنم جئتو شعر امروال غیثه و وقد نزد بازاد نزد لنومن سیابه ها میگه جئتو من رفتم و حالان که واقع. و حالان که قد نزد نزد یعنی کنده بود لباس کنده رو میگن نزد و قد نزد لنومن سیابه ها ها مفعول نزد لنومن این چه مثال ماست نو مستر هست فایل ها همینجه یکی بگید. هست چون همون کسی که لباسشو میکنه همون میخواد بخوابه فایل ها یکیه اما زمان یکی نبوده چرا چون زمان لباس کندن و زمان خوابیدن یکی چون اون زمانی که لباسو میکنه خواب نیست اون زمانی که خواب لباس نمیکنه لباسو کنده چون زمانهاشون است لذا مجبور شده بگه چی؟ لرومه جا رو مجرورش کنه نمیتونست بگه نزد نومن غلط بوده باید زمانها و فایلها چیه؟ یکی یکی باشه حالا نباه کنیم متحدن به آمه دهیم وقتن و فایل ومن سمم و از این جهت که این دوتا شرطه ومن سمم جیع به لام چی آورده شده بگی؟ نام آورده شده نام آورده شده چرا؟ مثل همین مثالی که الان زدم جیعب لام فی نهبه ول ارزه وزعه ها لعنام ول ارزه چرا منصوبه؟ ول ارزه وزعه ها بابه چی چی بهش بگفتن؟ اشتغال بابه اشتغال وضع هم خود شده بها و تفسیر میکنه یه وضعه رو قبل از انه از میگه وزمین رو قرار دادیم برای کی قرار دادیم زمین رو؟ برای مردم انام خب اینجا چرا لل انام علت انام برای وزمین مردم علت بودن برای قرار دادن زمین اما چرا لاما برد چرا نگفت انامن به دلیل اینکه که لیل انام مستریت بگید نداشت شرط اول رو نداشت. مثال دوم رو نگاه کنید تحییتو لسفر سفر یعنی مسافرت کردن من مثل مثالیه که من زدم زدن جهتو بقید نزدن تحییتو یعنی چی؟ آماده شدم سفر مسافرت کردن حالا همونی که آماده میشه همون چیه مسافرت میکنه فاین ها چیه یکی سفر مستر هم بگید هست سفر مسافرت سفر زمانشون یکی نیست. چون اون زمانی که تهیه میبینه هنوز مسافر نیست, نیست. اون زمانی که مسافرت داره میکنه دیگه تهیهش چی شده فرض کنید که من میام مثلا تا میدون اعدام یک دوستی هم دارم اون هم میاد تا میدون اعدام هم رو ببینیم زمان اومدن همون چیه؟ یکی مشخصه؟ من برمیگردم میگم جه توکه یعنی جه تو الهی کرد من اومدم خدمت شما لمجی یک ای یای لمجی یک ای به خاطر آمدن تو بگی به سوی من. من اومدم پیش تو چون تو اومدی تو اومدی اینجا منم اومدم پس علت اومدن من چی بوده؟ آمدن او مستر هست علت رو هم بگی میفهمونه زمان ها هم است چون هر دو با هم ملاقات کردن تو یه جاییم به اون اما فایل ها یکی نیست فایل چه تو ککیه تا فایل مجی اککیه کاف چون مستر اضافه شده به فایلش آمدن تو اون یا یا مفعولش نظر فایل ها یکی اگر فاعل ها یکی نبود یا زمان ها یکی نبود یا مستر نبود یا مستر بود علت رو نمیفهموند فهمون مثل مفهول مطلق مفهول مطلق مستر اما علت رو بگی نمیفهموند فهمون فائلت لتحصیلهی و حصوله نیست این شرایط باید در مفعول و مطلق چید مفعول و لح باشد تا مفعول لح در کلام پیدا باشه پس بنابراین اگر ما یه چیزی رو گفتیم مفعول لحه باید بدونیم که این شرایط رو باید توش درست کنیم مثل لا تقتلو اولادکم خشیت املا. لا تقتلو اولادکم خشیت املا یعنی چی؟ نکشید بچه هاتون رو از ترس. اونی که می همون هم می همون زمانی که می همون زمانی که چیه؟ درسش رو هم داره. درسته؟ فایل ها یکی زمان ها یکی خشیه مستر هم هست علت رو هم می‌فهمونه. فهماند می شیم هست یجعلون اصابه هم فیازانه هم الموت حذر الموت هم باز همین هم شرائط شرایط. اما اگر یک از این شرایط نبود چه بکنیم یک از این شرایط نبود مجرورش می‌کنیم به لام تا علت رو لام بفهمانند نه مفعولون نه علت رو لام بفهمانند نه مفعولون نه. انا سيه